اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر زبال نپذیر و پربرکت است کسی که قرآن را بر بند اش نازل کرد تا بین دهنده جهانیان باشد الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ و لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا خداوندی که حکومت آسمان‌ها و زمین ازان اوست و فرزندی برای خود انتخاب نکرد و همتایی در حکومت و مالکیت ندارد و همه چیز را آفرید و به دقت اندازه‌گیری نمود وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا آنان غیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیدند معبودانی که چیزی را نمی آفرینند بلکه خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خیش نیستند و نمالک مالک مرگ و حیات و رستاخیز خیشند وقال الذين كفروا ان هذا إلا افكون افتراه عليه قوم اخرون فقد جاوازلم و زورا. و کافران گفتند: این فقط دروغی است که او ساخته و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند. آنها با این سخن ظلم و دروغ بزرگی را مرتکب شدند. وقالوا اكتتبها تملى عليه و, و گفتند این همان افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس کرده و هر صبح و شام بر او املا می شود قل انزله الذي علم السر و في السماوات والأرض بگو کسی آن را نازل کرده که اسرار آسمان‌ها و زمین را می‌داند او همیشه آمرزنده و مهربان بوده است وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا, لولا و گفتند چرا این پیام بر قضا می خورد و در بازارها راه می چرا ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند؟ او او له و قال الظالمون این تتبعون الا رجلا مسحورا یا گنجی از آسمان برای او فرستاده شود یا باقی داشته باشد که از میبه آن بخورد و امرار معاش کند و ستمگران گفتند شما تنها از مردی مجنون پیروی می انظر چگونه ضربوا لك الامثال فلا ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند آن که قدرت پیدا کردن راه را ندارند تبارك الذي ان شاء لك خيرا من ذلك جنات جنات تجری من تحتها الانهار قصورا زوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، و اگر بخواهد برای تو کاخهایی مجلل قرار می دهد. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب ساعت سعیرا اینها همه بهانه است بلکه آنان قیامت را تکذیب کرده اند و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتشی شعله ور و سوزان فراهم کرده ایم اذا رأت هم من مکان لها, لها تغیضا و زفیرا. هنگامی که این آتش آنان را از مکانی دور ببیند صدای وحشتناک و خشمالودش را که با نفس زدن شدید همراه است، می و اذا القو منها مکانا ضیقا مقرنین دعو دعو هنالک ثبورا و حنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکند شوند در حالی که در قل و زنجیرند فریاد و آنان بلند می شوند. لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثمرا كثيرا به آنان گفته می شود امروز یک بار واویلا نگوئید بلکه بسیار واویلا بگوئید قل اذالك خير ام جنته الخلد قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا ايتيان بر بگو آيا این بهتر است یا بهشت جاوداني كه به پرهيزگاران وعده داده شده بهشتي كه پاداش اعمال آنها و قرارگاهشان است لهم فی ما یشاؤن خالدین كان علی ربك و عدم مسئولا هرچه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است جاودانه در آن خواهند ماند این وقت است مسلم که پروردگارت بر عهده گرفته است ويوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول فیقول اانتم اضللتم عبادی ها اولائی ام هم ضل السبیل به خاطر روزی را که همه آنان و معبودهایی را که غیر از خدا میپرستند جمع می کند آنگاه به آنها میگوید آیا شما این بندگان مرا گم راه کردید؟ یا خود آنان راه را گم کردند؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا انتخذ من دونک انتخذ من دونك من اولیاء ولكن ولكن بتعتهم وآباهم حتی نسوا الذكر وكانوا قوما بورا در پاسخ میگویند منزهی تو برای ما شایسته نبود که غیر از تو اولیایی برگزینیم ولی آنان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا اینکه جای شکر نعمت یاد تو را فراموش کردند و تباه و خلاق شدند فقط ك ذبوكم بما تقول ن ف تستقييع نصر ف ولا نصررا ومظن منكم نذقدبا که كبيررا خداوند به آنان میگوید ببینید این معبودان شما را در آن که میگویید تکذیب کردند. اکنون نمی توانید عذاب الهی را برطرف بسازید یا از کسی یاری بتنبید و هر کس از شما ستم کند عذاب شدیدی به او می چشانیم و ما اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ما هیچیک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه غذا قضا میخوردند و در بازارها راه میرفتند و بعضی از شما را وسیله امتحان بعضی دیگر قرار دادیم آیا صبر و شکیبایی می کنید و از اهده امتحان برمیآیید؟ و پروردگار تو هموار بسیر و بینا بوده است و قال لا يرجون لقاءنا لولا لولا زل علينا الملائكه ان كنتم اونا رانا ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا ونكبيرا كساني که امیدی به دیدار ما ندارند و رستاخیز را انکار میکنند گفتند چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمیبینید آنها درباره خود تکبر ورزیدند و تقیان بزرگی کردند یوم يرون الملائكه لا مشرا یوم اذل للمجرمین ویقولون حجرا محجورا آنها به آرزوی خود می رسند. اما روزی که فرشتگان را می‌بینند روز بشارت برای مجرمان نخواهد بود بلکه روز مجازات و کیفر آنان است و می‌گویند ما را امان دهید ما را معاف دارید اما سودی ندارد وقدمنا إلی ما عملوا من عمل فاجعلناه هباءا منثورا و ما به سراغ اعمالی كه انجام اند می میرویم و همه را همچون ذرات قبار پراکنده در هوا قرار میدهیم اصحاب الجنت یوم اذین خیر مستقر و احسن مقیلا. بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتن است و تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکت و به خاطر آور روزی را که آسمان با عبرها شکافته می شود و فرشتگان نازل می کردن. الملک یوم اذن الحق لرحمن و کان یوماً على الكافرین عسیرا حکومت واقعی در آن روز ازان خداوند رحمان است و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یقول یا لیتن اتخذت معرسول سبیلا و به خاطر آبر روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان میگزد و میگوید ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم ای وای لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای وای بر من کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم لقد اضللني عن الذكر بعد اذ و کانش شیطان خذولا او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از که یاد حق به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است. وقال الرسول يا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا و پیام بر عرض داشت پروردگارا قوم من قرآن را رها کردند وكذلك جعلنا لكل لکل نبی عدوا من المجرمين. و کفا هادیا آری این برای هر پیام بری دشمنی از مجرمان قرار دادیم اما برای تو همین بس که پروردگارت هادی و یاور تو باشد وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتد الله و کافران گفتند چرا قرآن یک جا بر او نازل نمی شود؟ این بخاطر آن است که قلب تو را به وسیله آن محکم داریم و از این رو آن را به تدریج بر تو خواندیم ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا آنان هیچ مثلی برای تو نمیآورند مگر اینکه ما حق را برای تو میآوریم و تفسیری بهتر الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولائك اولائك شرم ما كانوا واضل سبيلا تو گمرہ نیستی آنان که بر صورتهایشان به سوی جهنم مشور میشوند بدترین محل را دارند و گمراه ترین افرادند ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. و ما به موسی كتاب آسمانی دادیم و برادرش هارون را یاور او قرار دادیم فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآیاتنا و گفتیم به سوی این قوم که آیات ما را تکذیب کردند بروید اما آن مردم به مخالفت برخواستند و ما به شدت آنان را هم کوبیدیم و قوم نوحی لما كذبوا الرسل اغرقناهم و للناس آیه و اعتدنا للظالمين عذابا نوح را هنگامی که رسولان ما را تکذیب کردند غرق نمودیم و آنان را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم و برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساختیم و و و و بین همچنین قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس گروهی که درختان سنوبر را می پرستیدند و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند حلاک کردیم و کلا ضربنا له الأمثال و کلا تبرنا تتبيرا و برای هر یک از آنها مثلها زدیم و چون سودی نداد همه گیرا نابود کردیم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل نشورا آنها مشرکان مکه از کنار شهری که باران شر بارانی از سنگ آسمانی بر آن باریده بود دیار قوم لوت گذشتند آیا آن را نمیدیدند آری می دیدند ولی به رساخیز ایمان نداشتند وإذا رأوك ان يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي أهذا الذي بعث الله رسولا وحینگاهی که تو را می‌بینند تنها به باد استهزایت میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که خدا او را به عنوان پیامبر برانگیخته است ان كاد لیضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا علیها وسوف یعلمون حین یرون العذاب من أضل سبیلا اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمیکردیم بیم آن میرفت که ما را گمراه سازد اما هنگامی که عذاب الهی را ببینند به زودی می چه کسی گمراه تر بوده است آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟ آیا تو می توانی او را هدایت کنی؟ ام تحسب اند اکثرهم یسمعون او یعقلون این هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا آیا گمان میبری بیشتر آنان میشنون یا میفهمند؟ آنان فقط همچون چهار پایانند بلکه گمراهترند الم ترائیلى رك كيف مدضله ولو شل جعل سکینا ثم جعله ثم جعل, ثم جعل الشمس عل دنیلا آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گستر ساخت؟ و اگر میخوااست آن را ساکن قرار میداد سپس خورشید را، بر وجود آن دلیل قرار دادیم ثم قبضناه الينا قبض سپس آن را آهسته جمع می‌کنیم و نظام سایه و آفتاب را حاکم می‌سازیم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا و النوم ثباتا و جعلن نهار نشورا. او کسیست که شب را برای شما لباس قرار داد و خواب را مایه استراحت و روز را وسیله حرکت و حیات و هو الَّذِي ارسل الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وانزلنا من السماء ماء امطار او كسيست که بادها را بشارت گرانی پیش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک کننده نازل کردیم لنحیی به بل میتا ميتا و نسقيه مما خلقنا و مما خلقنا انعاما و اناسی كثيرا. تا به وسیله آن سرزمین مردهای را زنده کنیم و آن را به مخلوقاتی که آفریدیم ایم چهار پایان و انسانهای بسیار می وا قا سالرواف نه و به اینهم ل دكر ما این آیات را به صورت گوناگون برای آنان بیان کردیم تا متذکر شوند ولی بیشتر مردم از هر کاری جز ان و کفر با دارند ولو شئنا لبعثنا في كل قریة نذیرا و اگر میخواستیم در هر شهر و دیاری بیمدهندهای برمیأنگیختیم فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا بنابراین از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن قرآن با آنان جهاد بزرگی بنام. و الذي مرجل بحرین، هذا عذب فرات، هذا عذب فرات و هذا ملح اجوج و جعل بينهما و جعل بينهما برزخ و محجورا. او کثیف که دو دریا را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین و دیگر شور و تلخ و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند گویی هر یک به دیگری میگوید دور باش و نزدیک نیا و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا و کان ربک قدیرا او کسیست که از آب انسانی را آفرید سپس او را نسب و سبب قرار داد و پروردگار تو هموار بار توانا بوده است و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضروهم و کان علی آنان جز خدا چیزها را می پرستند که به آنان سودی می‌رساند و نه زیانی و کافران همیشه در برابر پروردگارشان در طریق کفر پشتیبان یک دیگرند و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا ای پیامبر ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادیم ان بگو من در برابر آن هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند این پاداش من است و توکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خمیرا و توکل کن بر آن زنده ای که هرگز نمیمیرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است الذي خلق السماوات والأرض وما بين وما في سدتی أيام في ستی أي منثم است على العرش الرحمن فصلبيخوابیرا همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد. در شش روز آفرید سپس بر عرش قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت او خداوند رحمان است از او بخواه که از همه چیز آگاه است و اذا قیل له اسجدوا للرحمن قالو قالو وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجد کنید میگویند: رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجد کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده می شود. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمر منیرا و پر برکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاههایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و هوالذی جعل اللیل و النهار خلفت لمن اراد خلفت لمن اراد، آیا ذکر او اراد شکورا؟ و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد، برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شوق گزاری کند. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخ گویند به آنها سلام میگویند و با بی و بزرگواری می گذرند کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام میکنند. وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَ كَانَ غَرَامًا و کسانی که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام است انها ساءت مستقر و مقاما مسلمن آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكثاني که هرگاه انفاق کنند نه اصراف می مینمایند و نه سختگیری بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند والذین لا یَدعُونَ معَ اللهِ إِلهًا آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ و مَن یفعل ذلک یلقا و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمیخوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمیکشند و زنا نمیکنند و هر چنین کند مجازات سختی خواهد شد یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و همیشه با خاری در آن خواهد ماند مگر مَتَبَ وَآمَنَ وَامِل عمل الله, سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند. و خداوند هموار آمرزنده و مهربان بوده است و من تاب و عمل صالحا فإنه يتوب فإن و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد به سوی خدا بازگشت می کند و پاداش خود را از او می گیرد و الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُونَ و اذا باللغو باللغوی مرون و کسانی که شهادت به باطل نمی دهند و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند بزرگ از آن می گذرند. والذین و الذین اذا ذکرون بی ربهم لم يخروا لم عليها و کسانی که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوش زد شود کر و کور روی آن نمی افتند و ربنا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قروت اعیون قررت اعیون و جعلنا للمتقین اماما و کسانی که پروردگارا از همسران و فرزندان من مایه روشنی چشم ما قرارده و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان اولئی یجزون الغرفت بما صبروا ویلقون یلقون فیها تحییتا و, يلقون و, يلقون و آری آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکی با ایشان به آنان پاداش داده می شود و در آن با تهیت و سلام روبرو می شوند. خالدین فيها حسنت مستقر و مقاما در حالی که جافدانه در آن خواهند ماند چه قرارگاه و محل اقامت خوبی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذا بگو پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد شما آیات خدا و پیامبران را تکذیب کردید و این عمل دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد